استوین در علماتی که دال بر رسیدیم به کلمه ای به اسم لدون ندون به معنای ان نزل یه والزم اضافه لدون فجر النسب و بها عنهم نادر واجب استنوافی علزمو زموتلو صار اسفطن مفعول ثانی عزله لاجون مسئولن یعنی لازم کردن عرب ها لدون رو که اضافه بشه اضافه را دادند به مگه فای آدفه که مفتید نتیجه هم هست. پس در نتیجه جرده فر زمیر لدون میشه چی؟ فاید پس لدون چکار کار میکنه؟ جرده وقتی اضافه میشه از مائده امن اضافه است جر میدهت ندون و لدون لدن ما بعد ها المضاف اضافه جر میدهت لدن به مضاف و یا جواب دهی عاطفه جمله اسمیه را اذب کنه به جای جمله فعلیه که این کار زیاد خوبی ولی اگر باغ رو باغ حالیه بگیرید و جمله ما بشه محلن منصوب حال از فائل جرد که مفهول اول لدن هم از دیگه نه فائل جرده که بود زمیر لدن بود که اول هر زمو هم بود خیلی خیلی از نظر معناسی میشه بیتر میشه و حالا اون که نسب دادن به قدوه نسب و قدوتن به ها نسب دادن قدوه کلمه قدوه یعنی چی؟ صبح جهت و قدوتن یعنی جهت و صبحن سباهن میگه و نصب دادن به کلمه قدوه بها به سبب این به استعانت این با یادت به استعانت این کلمه لدون ندرن این نصب دادن نادرن رسیده است از چی؟ از عرب یعنی کلمه یا قدوه بعد از لدون به جایی که مضاف نکه بشه و بشه چی؟ مجرور بشه که منصوب بیسید. حالا منصوب به چیه؟ پایین خواهید. پس کلمه لدون چیه؟ اضافه میشه. و ما بعدش مجروره و منصوب قدوهش هم به طور ناده بسید و نصب و قدوه و تنبه و عرضمو اضافتن لدون و لازم دانستن اضافه را برای لدون میگیم لدون چیه؟ میگه و ظرف را اول قایت زمانه قایت چی؟ مسافت من به ابتداء القایت یعنی برای ابتدای مسافت بین دو شهر دیگه آلا زمانان یا مکان لعول قایت زمان او مکان برای اول قایت زمان میاد یا مکان مثلا اگر من گفتم انتظر و توچه انتظر و توچه لدون سباه یومد جماع لدون سباه یومه جمعه یعنی منتظر تو شدم از صبح روز جمعه خب این برای چی اومد؟ برای قایت زمان ابتدایش رو دیکی؟ ایش قایت در زمان رو اول یعنی ابتدای قایت رو در زمان یا اگر مثلا این آیه رو بخونیم این لطولت قل قرآن نمی لدن حکیم علیم نمی لطولت قل قرآن تو قرآن رو دریافت میکنی به تو قرآن میگذر قرآن به تو داده میشود از حکیم علیم نمی لدن حکیم علیم از جانب خدای تعالی یعنی از خدای تعالی این قرآن فرود می آید ابتدای فرودش کجاست از ناحیه خداوند تعالیتا به تو لدون سه لدن حکیمه در قرآن کلمه لدن هرچی هست بامین هست یه دونه به نیمده نزا بامین عقصه هست. و در قرآن همش را مران درست حالا اون کلمه لدون مورب یا مبنی اونجه مبنی این کلمه لدون مبنیست این آفی لغت غیصه مگر در لغت طاقیه رئیس. چی میدونن مورب حالا چرا مبنی شده میگن به خاطر اینکه که تزمین کرد معنای من ابتداریگر وقتی من گفتم انتظر تو که لدن سباهری یا امری جماعته آیا تزمین کرده بود معنای من ابتداریگر یا نه ابتدار قاییت میفهمن به خاطر تزمینش معنای من ابتداریگر و به همین درمین اگه بگید کجا من هست من از کجا میگید بدون به خاطر همین که کاری وقاتم چیه ظاهر میشه مثلا در قرآن هر چی شما نگاه میکنید ببینید من چی شده ظاهر پس من هست اگر نباشد در واقع گرفته معنای می مثل لاینف جنس تقریبا حالا لای جنسه می رسید لاینف جنس لا رجول دار میگن رجولتش اون مخدوش شده میگن بوده لا من رجول آ معنای من جنسیت رو من استقراغیت رو من زایده ای که مفید تحکیده است رو که هسته استعمال کردن در یه موزه به کار بود یعنی حصلش میده نام من رجل انفتگار تحکید که جنس رجل نیست استقراغ در رجلی در کار نیست نفیه جنس شده نزا چون در برد معنای من رو شده مبنی و اون چی که نسکش برد این لا رجال هم هم در این پس ما گفتیم که لگان مبنی شده برای چی؟ برای که در برد معنای من رو درست شد مثل لای نفی جنس که مبنی شده در, در برد یه منه معنای زایده و از این هم قانوند که علمت بناش شباهتش به حرفه نه از اون هایی که ما خوندیم بلکه شباهت دارد به حرف در اون که لازم دارد که یه رو استعمال داشته شده یعنی شباهت استعمالی تقریبا نیسته حرف استعمال شده و چجار؟ در رضوع استعمال به یک شکل و اون هم زدیده و عدم تصرف در اینکه فقط ظرف است و متصرف نیست و تصرفی در کار نیست شبیه چی شده؟ شبیه به حرف شده حرف هم غیر متصرفه تصرف درش نیست و یک استعمال بیشتر حرف بگید نداری مثل اگه حرف فقط حرف جلد است یه استعمال دیگر بگید نداری یعنی در واقع گزوم استعمال واحد که اون ظرفیت باشه در این و عدال تصرف شباحت که به حرف حال هم عدال ها شده یا به خاطر شباحت استعمالش که عدم تصرف رو لزوم استعمال واحده چهار. یا به خاطر این مطلب که قبیه و قول مشهوره که در برگرفت معنای من رو من ابتدای قاید دنیم بردیم که من رو هم در برگرفت معنا رو اینه که چی؟ آ، بامن دیده شده به طور زیاد به دروران همیشه بامن الله في لغت غیثه مگر در لغت غیث در لغت غیث قایدن که خیل این مورده مثلا من لدون هور خوندن چی؟ من لدون نهی این شکل کنند رواب نیش وقتی مورد می‌دونن چرا میگن چون اضافه اگر شباحت هم داشته اضافه بایش چگاه کرده محارسه کرده اونها قادلا که نه زیاد بوده اضافه با قادر به تعارض نیست چون در بعضی از لغاتش لدون مثلا کلمه لده دو حرفیه شباحت وضعی هم شباحت هم داره وقتی دو سل تا شمیزه کم کم استقامیه کم خبریه مدنیه هم دردن گرفته معنای همزه یا رو همین که دوحرفیه مثلا اگر اضافه هم بشه مورد نمیشه اضافه فوقش تا یک شباهتش محارزه کنه شباهت دیگه سر جای خودش هست قدرتش چیه؟ در بنا بیشتر است از ایرام یعنی نقصش بیشتر از نقاط مثبتش خد دفع. و افرادها افراده چی قدر کردن لدون رو دیگه اضافه نشده و افراد لدون و نسبه حتی به جای افراده و نسبه قدوت انبه ها و نسبه دیم قدرابان خب قدور رو باون نسبه دیم اون چجوری قدور رو نسبه ده؟ میگه علت تمیز بنابراین که چکارش کنه؟ به امان تمیز برداره میگیم از وقت. منددون میشه از وقته ولی کدوم وقت میگه قدوطم این قدوطم این منصوب که یا چیکارش میکنه؟ فهمیزش میکنه وقت رو مشخص میکنه عقل تشبیحه به مفعوله به یا شباحته به مفعوله به مثل حسنان حلواج حریادتونه که شبیه رو به مفعول درست میکنه چون قادر نبود مفعول برداره منصوبم بود معرفه هم بود به شبیه رو به مفعوله اب التشبيه به مفعول به تا اینجا خود قدو امن کرده حالا یا تمییز یا شبیه به مفعول اون از ماره کانند عل التمیز اب التشبيه به او الا از ازماره... یا کانه و اسمش رو در تقدیر می‌گیریم ها کیو قدو بش چی خبره کانه. اون به لجن اون موقع لدون درست شد دیگه همه نکرده اونی که کرده چی بوده کانه و اگه لدون شده باشه از اضافه اشکالی نداره چرا؟ به ولیون این وقتی قد شده دیگه بعدی جمعه هم بیا مشکلی نیست ولی اگر در اون صورت بگن از اضافه قرد نشده و جمله کانه مضافنه لعیشی بگیم جمله کانه قادر به مضافنه لعیش شدن لدون به جمله اضافه نمیشه مجبورن یه هنی ناسبه هم قبلش تقدیر بگیم مجبورن یه هنی ناسبه قبلش تقدیر حتی توی عبارت مثلا سن من و شولن کارشات سویتی یک خایم رسید گفتن من لد و کانت شولن یه ان هم تقدیر حالا ازمار کنه نه اسمش را کنید و افرادها و نسب و ترده ها الوار دو انهم این الوار دو صفت اون نسب هست نسب که الوار دو از ایشان رسیده یا یعنی از عرب رسیده است این نداره نداره چیه؟ طورت از عبارت در اون افراد افرادوها و نصب قدوته علمارد و انها و از اینها رسیده خوبی چند فقط همین قدوته رو نصبش دادن به همین احتمال میگه و کزا رفعها و همچنین اگر بخونن ملدون چی چی بره؟ برفت میگه اون بر چیه میگه علا اسمار کنه بنابراین که کانه چیه در تقدیر باشه میگو کانه هم خبرش میگه نه الازمار کانه اتا کانه تامه که میگوشه چی؟ پایه میشه الازمار کانه اتا من کما اکافون کوفی دون همونطور که این محبوب رو ایچ کار کردن کوفی ها نگوشه خب حالا این ویورتف بذارید باشه یک شیعه است. که میگم برای خاطر این قدوه تو ذهنتون بگون مازال مهری مازال مازاله این چی پیبسته مهری با چش چشم یعنی عصب من عصب خوب مهری مز جلال کلبه نمهون یا تو بعض این آسفش مازال محری مز جلل کelbe نور و یافی وجه مازاله پیوسته اس من کلبی مز جلل کرد این مز کرد که متعل به سلطنت موجودن ظرفه و خبر است از برای مازاله میگه پیوسته اسب من در محل رانده شدن بود چطور سگ رو میرانند از اسب من ها این وقت داشتن در میدان جنب این وقت از او وحشت داشتند را رو کلبه نموم یافیه متعلق از به مزجد در محل رانده شدن بود در بین ایشان بکنم متعلق و ثابتن باشه اگر گفتیم که اسم مکان دیگه حالت اشتحاری نروی بعضی قاعد شد. خوب، میگه که معظا لمری مزجر کرد به همون لدون قدوطن همینجا شاید مثاله لدون قدوطن حتی دنت لقروبه لدون قدوطن از سو از سو ملیان جنگ اینطور بود لدون قدوطن حتی تا دنت به غروب غروبه دنت این یعنی خورشید زمیر هیهش به اعتبار مرجعش حکمیه مثل عبقی هل کل وارد ملحوم از سودوس از سیاه فهمیده میشه چون خرشیده که غروب میکنه. دنت به غروبه یعنی تا این که خرشید نزدیک شد به چی؟ به غروب کردن این در از صبح تا غروب این اسب من در بین اونها مثل سگی که از این بران برانهش الان شاید سره کدومه هم. لدن و قدوطن. این لدن متعلق است به اون چیزی که فیهم یا فیهم بهش متعلق که ثابتا موجودن این لدن متعلق قدوطن سه تا ترکیب گفتیم نه تمیز شبیه به یا خبر کانهی که با اسمش از اگر خودتون بخونیم فاقیل کانه تا قول قولی کنیم حتی دلت به قروبین حتی, حتی افتدایی و استینافی هست دلت به رفاقیل به قروبین متعلق به دلت این چه رقایت شده به نسب قدوه یا بنابرای تمیز تمیز بنابرای این که بنابرای اون که تشویل کنید مون لدون رو به تنویم همونطور که تو لغات لدون این رو میدونیم تو لغات لدون یکی لدون لد لود، لد لد لغاتی داره که مون توش شیر افتاده تشویه نون لدون رو میکنیم به تنوین همون که ما این تو لوقات لدون میبینیم که دونش گاهی اوقات چیه پس از این جهت پس از این جهت لدون شبیه میشه به اسم که هم که تنوین هم داری اسم مبهمی که داره چیه تنوین لدون لدون انگاه شده مثل رت رتلون یعنی شبیه شده نون لدون به نون تنویلی رترون چطور رتری میتونه نصب بده بنابرای تمیز و مبهمه میگیم اندیو رترون زیتون این اشکار کرده نصب بده پس بایدن چه کردن؟ یه علت این شکلی درست کردن که نون لدون شبیه به تنویل رترون شده چطور رترون اسم مبهم است و نصب میده؟ آه؟ لدون هم اسمی مبهم است و چی کار کرده؟ نه است این یک در مرحله دوزم اومدن گفتن تنویم به تنویم تشمیل میکنیم اما یه چیزم اضافه میکنیم که مرحله اول گفتن لدون مثل چی میبونه؟ مثل هکنان میبونه نونه لدون مثل نونه هکنانه هر دوز مبهمن هر دوزم دو آخارشون نور. اون نونش تنوینیه این نونش نون ذاتیه ولی هر تا هم کاری وقای تنوینشون چیه اون تنوینش این نونش میفته اون مقامین هم مقام میتونه بنابرای تنویز نصب بده مثل زد. اما بنابرای شبیه به مفعول چطور؟ رو و اما شبیه به مفعول باید تشبیش بکنن به اسم فایل میگن نون ندون شبیه به تنویل اسم فایله مول شدید شبیه اسم فایل از چه از این جهت که گاهی هست و گاهی اوقات نیست مثلا تنبیه اسم فایل گاهی هست گاهی نیست می رفت در افلام و یاد این همین جون هست گاهی نیست این شبیه به اسم فایل از چه از این جهد که اسم فایل آخرش تنویل نون اینم آخرش چیه؟ نونیه اون نونشگاهی وقت میفته اینم نونشگاهی وقت در لغات دیگهش چیه؟ افتاده از این جهد هم شبیهشون میکنن و میگن مثل اسم فایل بتونه شکار کنه؟ امان یست اسم فایلی که تام به با تنویل بتونه؟ امان بعد بن لدون هم مثل تنوین اسم فاعل گفتن ظاهر واقع میشه گاهی اوقات نیست گاهی اوقات هست پس چی گفتن گفتن نون لدون گاهی هست گاهی نیست مثل تنوین زاربر که گاهی هست گاهی نیست جزو ذات کلمه هر نونه هر جا ساکن است پس از این جا اج ورن اشاره به چیه زاربره اینجا مثل زار میتونه نصب اما زاربان خودش اسم فایل متعدیه نسب میده بنابرای مفهولون به بودن این چون اسم فایل نیست وصف نیست بگیر این که بگیر مفهولون به فایل بگیرم چی؟ شدیه به مفهول این هم بگیره دو خود دو که گفتیم چی؟ که کانه درده میگیرم یعنی ودون کانه الوقتو کانه با اسمش چی شده؟ لدون کانل وقت و قدرت و در دیگه نصب قدرت به لدون نیست به چیه به کانل همینطورم هم اگه کانه تا همه تردیل بگیم لدون کانل کانت قدرت دیگه این موقع رفع قدرت به چیه به لدون نیست کانای کانه الا به حال ببینید اون چی که استدلال کردیم استدلالش همچین استدلال قویی نیست نهد و نهد مجبور میشه به مدون یک بار هم منصوب اومده بعد نهدی ها برای منصوبش کار کردن علمت تراشیدن یا گفتن اون مدون رو تشکر می کنیم به تعمیر رتلان اسم مبهنگ و میگیم تمیز این برو خوبیه یا میگیم تشکرش میکنیم کنیم به چی؟ چشمش میکنیم به اسم و شبه رو درست در که نونگاهی از نیست در اسم فعائلم از کاری نیست هرگام کلمه نیست ذات اضافی داره هنگی جزوزاد نیست در ندون جزوزاده ولی حالت به شبه اضافی داره گاهی از نیست این عربتهای عربتهای بسیار ضعیفی بود حالا که اینو دیدید اگر یک جای ما اینطور مثلا تو شعر هستش لدن قدوطن بعدش بود مثلا و عشیگه عشیگه یا ایچی؟ خروب لدن قدوطن و عشیگه اینو چی بخونم؟ بخونم لدن قدوطن و عشیگه تن از به لفظش کنم یا بخونم لدن قدوطن و عشیگه چون اون باید مجرور باشه چی هست داره کار نداریم داره, داره چیه مجروره یا حالت جرد داره این شمیده چی؟ و یه اتفاعله قدواته و عط میشه بر قدوه از منصوبته که چیه؟ منصوبه هست؟ به جرد عط میشه به چی؟ به جرد بگو لد قدوهن و عشید یه چرا لَهَنَّهُ مَحَلُّهَا الْحَقیقی زیرا محل حقیقیش همین؟ جرده باید مزاقنه از الفاظ دارم اضافه است لَهَنَّهُ مَحَلُّهَا محل حقیقی و جرد نظر اخفش ها ان افش گفته چی؟ گفته اگر نصبه کدید اشکار نداره لفتش میشه جرده مشکل نیست به محل حصلی کردی. اگر نسبم دادی غلط نیست امده میگه چیز آیه ابن مالک اونگان کرده قار المسنفه قائم الله جلال از قول ابن مالکه قار المسنفه و اقوبر و این دونه مسنف کفته ای از قاعد و قیاس چیه دوره این اولا خودش قربتا منصوب شده بکی برخلاف قیاس منعصوب شده حالا ما میام عطف بر اون هم بکنیم تو عطفش هم برخلاف قیاس هم بکنیم این از وارد و غاربه. این چیه دوره میگه دیگه واقعا تو عطفش برخلاف قیاس عمل بر... نشده ما گفته غلطی گفتم اون وقت این دوناله قیاس یعنی ما یک بار خودی کلمه خطا کردیم یک بار در عطف بود این دیگه دو تا خطا پشت سر یک کلمه دیگری که اضافه بیشه و واجبون اضافه هم هست کلمه امه هست امه محل اسره یوسرا کلمه محه ظرف هم هست وابا آتفه و محه محفی ها قلیل رو شده ترکیب نکنیم <تصفيق> گفتن نصب قدرت مزاق مزاق به ها متعلقه به نصب انهم متعلقه به ندره و ندره خبر فرکیب کردن <تصفيق> حالا بعد برگباه کنیم بعد کنیم ببینیم ذهن ما قویست یا ذهن شد و نعن نعفی ها قلید و نوخه فتحون و کسرون به سکون یدتسه و قدر آتفه م عطفه بر لدون عطفه بر لدون بید قبل و عزمون اضافتا لدون و مع عطف روزه لدون مفقول اول عزمون میشه نگه نه مع فیها قدیلون مع محتدا قدیلون خبرش فیها متعلق به قدیلون نه در این کلمه معرب خانیم چیه؟ غلیله است. این فعلش کنیم؟ ساکن کنیم میشه مبنی. در صورت که مع هست چیه؟ مراد. در صورتی که معط میشه میشه چی؟ مبنی. میگه مبنی خوندنش چیه؟ غلیله به نام عارضه. معفی ها غلیله. این جمله حال از مع است. این جمله حال است از برای محب. یعنی و الزمون اضافتاً مه و حال اون که مه توش بخونی چیه؟ من نو قلعه آتفه عطف و جمله حالیه شده اینه عطف جمله مه من نو قلعه فتخون و کسرون فتخون و کسرون نایفایل نو قلعه است عطل و جمعه حالی شده یعنی عطل و جمعه محطی و و کسرون فتحون و کسرون نغل است نقل شده است فتحه و کسره نقل و فتخون و, و کسخون لسکونه, لسکونه متعلق است به فتخون کسخ یدپسه فر زمین فائدش جمله نعت برای سکونه خب این سکونه به ما گفتیم متعلق این چیه؟ فتح و کسب متعلق این ها شو نیزا کردن متعلق به کسب میشه ولی فرح هم ویشت چیه نیزا کرد سکون اینجا چی میگه؟ ببینید میگه که اگر مه بخانیم مه یعنی ساکن بعد این مع رو که ساکن اضافه بشه لیه ساکن دیگه مثلا بگیم مع الله اون قبلی که منصوبه مع الله ظرفه مع الله من انصاری مع الله حالا اگر مع ساکن بشه مع باشه بچسبه به با الله بگه چیکار پیم بگه خب اونجا باید چیکار پیم ازده و ساکنان این حرکه حرکه به کسر یا به فرد شد. یا مثلا مثل من الله یا ان الله یا مفتول یا بخون معلله فتحش فتحیه که برای اتخای ساکنه شده و الله یا معلله کسی کار و کسی در این صورت در این صورتی که نه نعفونده شده و مدونی فرق دادن و کهسر دادن به خاطر چی؟ به خاطر سکونی که متصل شده به این مرد. یا به خاطر ساکلی که متصل شده به این مرد. سکون متصل شده به این ما معنوی و متصل شده متصل شده اینجا منه اسم فاعل که به خاطر ساکنی که متصل شده به این معن. معن اسم آن ل مکان اجتماع، اسم از برای مکان اجتماع او وقتی هی. یا وقت اجتماع یا مکان اجتماع یا وقت مؤخر به معرف است مثلا من وقتی میگم مثلا جه تو محل حسره جه تو محل حسره یعنی چی؟ یعنی وقت آمدن من مستمع شد با حسره جه تو محل یعنی آمدن من اجتماع برزای کرد با مغربون این کلمه مغرب است الا فی لغت ردیهت مگر در لغت طایبه ردیه فگه قولون نه به تسکین علمی. اونها معنی گرد به سکون علمی به سکون به تسکین علم تیما به تسکین علم در این کلمه معن بناهن اونم از جهت چی؟ بناهن کار میکنن میگه با خواهن اما این با بعد که معنی خواهنیم چیه؟ نیست و وقای سیبهه ضرورتون اما سیبهه گفته قلیم نیست قلیم لگه چی؟ اینو استفاده کنیم نتونیم اصلا کنیم هست اما استعمالش بسیار نده اما ضرورت اینی چی؟ <تصفيق> یعنی فقط در شعر جایزه در دورشه شعر جایز نیست سیبه این طور امان کردی که این ضرورت شعریه است. وقال از ضرورتون ضرورت این شعریه ومین هم قلطه یا ضرورت شعریه بنابرای قول آقای سیبه یا قلیل بنابر قول مصنف ما بنابرای مبدولدن این شیر رسیده از طرف رویه هم بابده شد میگه فریشی منکن و هوایه نه کن و این کانت زیارتو کن نمانند سا خواهی نتیجه ریشی مبتدا منکن متعلق با عامل مقدد خبرش ریش یعنی لباس مال ثروت این چیزهای رو گفته تو درانه داریم ریشم و لباس رو زادی که خیلی میگه من هرچی که دارم از زیور و لباس و هرچی که دارم از مال و منال منکن از که به دست اومده از شما و هوایه نکن هوایه یعنی و نه به قلبی من هم دیگه با شماست هوایت محتداست محکم متعلق به صحابتون موجودان اول شد سر من که مردی استفاده شده و من میبست بکنم اضافه هم شده و نه یه باطنی من با شماست و این زیارت زیارتو کن ما ما این این بسنیگه است که قبلش این شرطه معلوم به طریق اولاده یعنی امکانت زیارت و قم دائم و امکانت زیارت و قم نمام نمام یعنی گاه گاه بجز اگر چه ملاقات کردنم شما را این زیارت و قم مسئله ارزشش بشه یعنی زیارتی یا قم اگر چه زیارت کردن من شما رو باشه گاه -گاه اگر همیشه باشه مستمر باشه که به طریق اولاد اگر من زیارت من گاهگاه باشه با من همه چیزم از شماست و اوای دلم هم با شماست این گاهگاه -گاه هم که میاخده شما شما همه چیز به من اعتاق کرد و من هم همه دلم به سوی شماست دماما خبر کانشم و نقل رفی ال زیدن حالت و نرد شده در این حالت یعنی حالتی که معلی میشه مبنی مبنی و سکون در نقط رفی و نرد شده در این حالت بدخون و کس دونده ها فعت دادن و کنس دادن به این و فرش لسکون یکتس به ها به خاطر ساکنی که متصل بشه به چی؟ به کلمه معلی که مبنی و سکون به خواست ساکنی مستنده در <متحد> <عرق> اول دلیلش چیه فتیف بودن فتیف اقفه حرکات و کلمه مرگیست ها سقیل فتیف <عرق> هر و سامی مستنده سامی مستنده چیه اصل فی انتقای در انتقال ساکنه اینه هم دکاره نکرد دکاره دکاره اصله دیگی هم لا تنفک و محن عمل اضافته. میگه میشه اضافه نشه محن میگه بله محن گاهی از اضافه قد شده اونم جایی که حال واقع شده میگه اصلا مضافه لد نداره نکرم هم باید باشه حال به معناه جمعی هم محن را آنست لا تنفک و محن الا اضافه قد حالا مگر انگامی که چی باهشه حال باهش لا تنفک لا منفقی میشه جدا نمیشه محه از اضافه مگه در این اینگامی که چی باشه حال ما این لاعظامه بعد خانه بگه این اضافه استثنان مفلقه یعنی لا تنفق و محه اضافه توی کن به وقته این لا وقته این اضافه, ای اضافه شرطی ایست متنده اون لا تنفق کسید لا تنفقه هم تاممه است یعنی لا تنفصل لا تنفصل و اضافه تا. اضافه از محن دور نیست. در همه اوقات مگر در وقتی که حال محنش به معنی جمعی حال محنش به معنی جمعی هم که خود بگید بکت عینی یعنی یسرا زجر که ها همه جهلی و عدل حلیه از بلتا محن یا استبکتا محن استبکتا محنی بکنی موسیقی استتاله به معنی تاله هست بلن یعنی فروری سرد و پایین آمد یعنی این سکه با اگه بخواید درست این سکه با من یعنی با هم تو روید نگه بکت اینی یعنی یا یوسرا چشم سمت چپ من گرگه کرد گریست فلا ما سچه توها پس نمانی که من عشق کردم منع توها من عشق کردم انگل جه بعد الهر. من اش کردم از آشنی و جه بعد از اینکه آخر شده بیدو اقلی به سر شما نمید. بعد از اینکه این احساس میکردم بیا آخر شده او را از جهر من اشکردم. اسبرت من، خواهیم که به اون گفتم گریه نکن. یه ها اسبرت آمند. هر دو با هم شروع کردن. یاد دوران وقت فعل هنگی فاعلش حلی اصرا صفت حلی علمی فلما فاقای آتفه و نتیجه لما نیسته ازاسه فعل شرط منصوب به شرط فقط در ماضی زجرکوها فعل و فاعل و مفهور و بعد الهل این رو قلقم به این فعل شرطه از جزای شرطه خیلو خواهد معن حال است از داره خواهد برای تسمیه هموند مره که حال واقعه میشه برای تسمیه میاد برای یکی جمع هموند میگیم جا علا قومو یا میگیم چی؟ جا از اید و معن و معنی میگه از این کذیبه ببرم از اینجا که میخواد شروع بکنه میاد شروع میکنه بخصی رو در مورد کلماتی مثل قیل در در جهات ست که اینا که پاور مثلا للا دل هم من قبل و من بعد این اگر مزاقون در اینش زک شده بود خدای طالع اینطور میگو للا دل هم من قبل و قلبت و من بعد و این مضافانه لکه زیگ شده بودو شدن مردیم من قبل قلبته و من بعد قلبه این سوی ها صورت مذکور بودن مضافانه لکه گای این وقت هستش که مضافانه لکه مذکور نیست محضوفه اون باید که محضوفه سه شکلی بیاست یک شکل جاییه که مضافانه که محضوفه لفظ و معناش حقه در نیگه هست یعنی نفس غلبه و معنای غلبه هر دو در نیلیت در نیلیت می لذا اونجا اینجای این که اصلا مذکوره چون اینجا هر مقدره که هم چیزی که هم لفظش هست هم معناش اینجای اصلا شد لذا می خونن به الله لحم رو یعنی و یعنی بردیل کسی روی می دن انگاه رو یعنی و من بردیل قبله رو پاک کردن این اینو کش میگن نویین یعنی منوی یاد یعنی نویینش بخوره به لفظ منویینش بخوره به معنا یعنی لفظ و معنا هر دو درمیت گاه هم هست که لفظ و معنا هر دو درمیت نیست میخواید بگه از پیش نه لفظ مضافه نلک درمیت نه معنا یعنی در یک چنین جای تنبیم میاد و نکره میشه لذا خوندن دلاله لهم رو من قبل و این دو بعد گوهیم اینش میگرن نصیرین و منصیرین نصیرینش بخوره به لفظ منصیرینش بخوره به این دو صورت از صورت های محضوره. یک صورت محضوره هستیش که معنا در نیت باشد لفظ در نیت نباشه لفظش حالا کلبه از گهر هست ها؟ سطره هست هر چون باشه باشه معنا از این جنس باشه معنا در نیتشو در این چه این صورت من میبرد زمنشو میگرن از بله الهندو من قبلو و من بردگیم او شد این صورت صورت چیه؟ این عکس این صورت هم غلطه یعنی اگر این جایی باشه که این معنا در نیت نماشه مرس در میاد باشه غلطه چرا چون مرسی بدونه معنا چیه؟ محمد اصلا مستعمر غلطه حالا اینجا میگن همین کلمه رو همین مبارس رو پیاده میکنه ببینید چی میگه؟ میگه وزمان دنائن لیون این عدم تما نبو قذیفن ناوین ناغود ما این صورت صورت دنائر میگه وقتی صورت دنائر رو بگه خب معلوم صورت دیگر چیه رو نارد رو میگه واب واب استنافیه چون قبلش جنبه این شایی را باب استیناسی ازمان که زمیرندتر فاعله شد بناهن مفعول انده. یعنی به جهت بناهن یا مستر رو بکنیم به معنای اسمی فاعل بگیریم در هر حال از فاعل عثمان میشه چی این واقع؟ ازمان بناهن یعنی به جهت بناهن دنها هم دنهای بانیان یعنی در حالی که نبغی میکنی میشه حال از برای صاحب ازمان من میتونم من دیگه مزاف اومده حضب شده مزافیلت جاشن شده حضبش بوده ازمان زم و دنهاه مفهول مطلب باشه خب معلومه میگه وقتی نگام کنی تا احتمال ما غدیف کرده هم میگیم خود احتمال اول غدیفت که چی باشه مفهول و دن هیچی نه احتمال دو زریفتر احتمال صورت از که میدیم چی بوده مفروران؟ مطمئن پس بناهن یا نبناهن؟ مفروران در بانی زن با بناهن؟ مفروران؟ مطمئن بناهن گیرن مفروران برای عزمان زن نده ده؟ گیرن چه زن آ زمی که بگه یا چی یعنی مبنی کن دیگه این عدم ما این حلی شرکی بگه عدمتن بگه دفعه ما مفهول جمعه فیرشن جذفت به قلیلی دلیل و جذفت ممتی شده, شده. این عدمتن ما لحو اصیفه اصیفته زنی نایف و آیه. تعلقه به اوزیفه این اگه انتا ما اوزیفه نه یعنی ما اوزیفه ده ده, ده دیگه نه اگر معدوم کردی اگه انتا اینه عذف دیگه اگر عذف کردی آنچون که اضافه شده از چه به سوی اون مثل ده, ده میشه چی آیده سیده اوزیفه از همینیشون های فایده در بر میگه دیگه کی؟ ده اگر مفعول کردی آنچرا که به سوی او اضافه شده ناوین حال از فاعل عدم کرد حذف کردی آنچرا که دور به سوی او اضافه شده در حالی که نیت گرفتی ماخذ ما یعنی ما حذف ما مسئول ناوین در حالی که نیت گرفتی آنچرا که بتوی حذف کرده شده است ما مفعول برای نایین رب بوده نه یعنی ها زفر این عباد این جمله آیا صورت بنایه وشنگی رسونه اون صورتی که اون صورتی که ما هم نفذن هم معنی هر در نیگرد داخل این صورت چیه هست در این بنا چی میگه میگه بده, بده بنایی اگر حضر کردی آنچون که غیب سوی او اضافه شده در حالی که نیت میگیری محظوف را در حالی که نیت میگیری محظوف را حالا تی فقط باید, باید, باید چی؟ در حالی که نیت میگیری فقط معنای محظوف رو ولی اگر لحظه معناه باشه چی؟ اینجا اران نابیان معقد ما فقدیه داره اون مذاقه در تردیلش کنونه نابیان معنا باونه پس زن نبه ده معنای شماییی زن نبه ده چی؟ به جهت بنا یا در حالی که مبنی میکنی یا زن نبه هنائی دادن بنایی گهر را اگر عرض کنی آنچه را که اضافه شده است، گهر به در حالی که محقه حصل میکنی در حالی که ملیت داشتو باشی معنای محضوی بکنی اگر نیگت کنیم معنا رو مخصوص را پبرد میشه معنی و ادار اگر نیگت کنیم با اوه مرح که هم شامل هم معنا میشه اون موقع دیگه معنی که یه سیچون مالا <تصفيق> یعنی اگر معنا اونجا تردیم نگیریم عبارت ابن مالک چیه؟ قلطه بزاق بالت عبارت ابن مالک رو با یه مزاق تردیر دروز کرد بگیم مزاق افتاده مزاق را اجاش کشسته این عبارت به خ